از خانم تاکاشی جدا شدم و به ایستگاه یوکاگاوا برگشتم. در سمت اوجینا از چپ به راست در ده مکان آتش شروع شده بود. از وضعیت خانم تاکاشی خبر ندارم. شاید در آتش گرفتار شده باشد یا داشته اضافه شده. در سمت پل میساسا هم شعله آتش زبانه میکشید. به نظر نمی رسید از خیابان ها بشود گذشت. مسیری که اکنون می توانستم از آن بروم، دنبال کردن خطوط راه آهن مسیر سانیو و گذشتن از پل فلزی یوکاگاوا بود. در این صورت، فقط خطوط راه آهنی باقی میماند که سربالایی به آبادی فوتابا می رسید. پس تصمیم جدی گرفتم و پیاده کنار خطوط راه آهن مسیر شرق به سمت پل یوکاگاوا حرکت کردم. اینجا هم افراد در حال فرار کم شده بودند و بیشتر افراد حاضر هم زخمی مهلک یا سوختگی شدیدی داشتند. کودکی به سن کلاس اول دبستان تنها راه می رفت. دنبالش رفتم به او رسیدم و صدا زدم بچه کجا می بچه با چهره پریشان هیچ جوابی نداد. تنهایی می توانی از پل فلزی بگذری به این هم جوابی نداد. پس در عبور از پل همراه اموشا. کودک آلود بود. قدم زنان کنارم آمد. اگر از پل پولفلزی می‌گذشتیم بلافاصله بعد از آن کوه فوتابا بود با این حساب جای هیچ نگرانی وجود نداشت فکر کردم اگر نسبت به آن پسر ابراز همدردی و محبت کنم گرفتار خواهم شد بنابراین نه نام و نه هیچ چیز دیگری از او نپرسیدم کودکی دوست داشتنی بود اما خوشبختانه چون او هم هیچ حرفی نزد به ایدم کمک کرد کودک انگار دچار اختلال حواس باشد، با پریشانی و دهانی باز راه می رفت. گهگاه که به تراورس های در حال سوختن می رسیدیم، کودک با تعجب می استاد. دو دوست تا سنگ به طرف آتش می و دوباره راه می افتاد. من هم فکر کردم سوختن تراورس ها عجیب است. در حینی که قدم زنان پیش می رفتیم، ها در جاهای مختلف آرام می سوختند و از آنها دود بلند می شد. از سر یا میانه به بالای تیرهای چوبی چراغ برق هم دود بلند می شود. بیشک دشمن بمب‌های روغنی انداخته بود. اینطور فکر کردم. بنابراین آتش تراورسی را با لگت کردن خاموش کردم و برای اینکه ببینم چه بویی می چهار دست و پا جلو رفتم و آن را بو کردم. بویی جز بوی سوختن چوب وجود نداشت. گفته می شد روغنی بویی عجیب و غیر عادی دارند. پرار خیلی عجیب بود. وقتی بلند شدم، آنچه به چشمم آمد، تندر سری بسیار بسیار بزرگ بود. سطح این توده ابر ای با ابرهای قرآن هنگام زلزله بزرگ کانتو که عکسشان را دیده بودم شبیه بود. اما این توده ابر ای عبر پایه ای کلوف داشت و در ارتفاع بسیار بالای آسمان پخش می‌شد. مثل باز کردن چتر بود و به شکل قارچ رفته رفته زخیم تر می ای بچه، آن ابر بچه به آسمان چشم دوخت و دهانش باز ماند. قبرها ساکن به نظر می رسیدند، اما در واقع به هیچ وجه ساکن نبودند. وقتی دقت می کردی، متوجه می شدی که لرزان لرزان یک بار چتر به سمت شرق و یک بار به سمت غرب و باز دوباره به سمت شرق باز می شود. در این حین، جاهایی از آن قارچ با نور شدیدی می درخشید. در حالی که به رنگهای قرمز، ارغوانی، کبود و سبز تغییر می کرد. همزمان از درون به بیرون متورم شده و زخیم تر می شد. پایه آن هم که شبیه تعداد زیادی دسته روبنده بود، هر آن به شکل عجیبی کلاف تر می شد و به نظر می رسید الان است که به هیروشیما حمله کند. در تمام بدنم احساس ضعف کردم. اندیشیدم آیا پایم شل نشده است؟ آنچه زیرش دیده می شود، رگبار تابستانی است. به شکل نام ای کسی این جمله را خطاب به من گفت. نگاه کردم زنی میان سال بود که چهره دخترانه ساله می داشت و حس خوبی به آدم میداد. درست است باید رگبار تابستانی باشد. چشم را به آسمان دوختم. با این حس که آن چیزی که میدیدم مانند چسبیدن ذرات و دانهها به هم بود و فکر نمیکردم ابرهای تابستانی باشند. فکر کردم شاید گرد است یا چیزی نامعمول که تا حالا ندیده بودم. اگر حمله ور میشد و با زراتش ما را مورد حسثابت قرار میداد چه میشد؟ چنین نفکاری باعث شد تا بدنم از ترس خم شود. ابرهای آن قارچ با گستاخی لحظه به لحظه به سمت جنوب شرقی پیش میرفتند. پایم واقعا خم شده بود. زن میان سال کودک همرا همراه دید و گفت با بچه نمی توانی از پل فلزی یوکا با بگذارری. گفت تقریبا در درصد گذرگاه آن طرف پل به خاطر واژگونی واگن و بند آمدن ریل ها مسدود شده است. این طرف پل هم صدها بلکه هزارها نفر از آوارگان روی زمین نشستند. چرا بر نمی گردند؟ وقتی پرسیدم گفت: « همه دارن استراحت می کنند به شدت زخمی هستند و نای برگشتن ندارند. در بینشان کسانی هم هستند که از پ درآمدند. آنها درباره آن ابر آنها چه میگویند؟ چه جور ابری است؟ بین افراد این طرف پل فلزی؟ کسانی میگفتند آن ابر مکوری کوکوری است. واقعا مکوری کوکوری است. اما با بچه میتوانی از پل بگذری؟ بچه شنیدی؟ صدای خشداری از من خارج شد. به نظر نمی رسد بچه به تواند از پل بگذرد. بنابراین با خاله می رود. چطور از مسیر ترانوای خط کابه را دنبال کند و به سمت کوه برود؟ بچه نگاهش را به صورتم هم با این حساب امو و بچه اینجا از هم جدا می شوند. کودک پریشان بود. زن میانسال دست روی سر کودک گذاشت و به من تعظیم کرد. پسر بچه پشت سر زن میانسال قرار گرفت و قدم زنان به جهتی رفت که مدتی قبل از آن آمده بودیم. کفش کتانی سیاه پاری با پاشنه کوچک به پا داشت. روی شورتش پیراهن نیم آستینی به داشت و دست خالی بود. ابر قارچی شکل بیش از قارچ به عروس دریایی شبیه بود. پایش را که بیش از عروس دریایی دارای نیروی فعال حیوانی بود میلرزاند و در حالی که سرش به رنگهای قرمز، ارغوانی، نیلی و سبز تغییر می کرد به تاخت به سمت جنوب شرقی می رفت. مثل گلگلا جوش از داخل می جوشید و به نظر می رسید هر آن خشمناک و وار حمله خواهد کرد. ابر موکوری کوکوری. این نام مناسبی بود. آیا فرستادی از جهنم نبود؟ آیا تا کنون کسی در این دنیا بوده که حق هزار چنین این چیز حولنگی را داشته باشد؟ آیا می توانم از آن فرار کنم؟ آیا می توانم به خانوادم کمک کنم؟ آیا می توانم برای کمک به خانوادم برگردم؟ آیا تنهایی سرگردان نخواهم شد؟ پاهایم شل شد و نمی توانستم قدم از قدم بردارم. لرزش بدنم تمامی نداشت. نه بی خود است از کجا با موج انفجار به اینجا آمده چوب برنج کوبه افتاده کنار تراورس های راه آهن را برداشتم و بدون توجه به اطراف با آن ساق پاها باسن و رانهایم را کوبیدم کتف و دستم را نیز کوبیدم چشمهایم را بستم و نفس عمیق کشیدم این روشی به نام آین تطهیر بود که در مراسم صبحگاه شرکت مجبور به انجام آن بودیم نسبت به نفس اممیخ کشیدن معمولی آهسته تر هوا را فرو می بردیم و آهستهتر آن را پس میدادیم مانند نفس اممیخ کشیدن مراسم جادوگری بود این کار به حال پایم مفید واقع شد و احساسم نیز مجالی یافت بنابراین این رو به شرق روی ریل راه آهن جلو رفتم عجله داشتم اما به شکلی قدم بر داشتم که از سایر آوارگان پیشی نگیرم این رفتن متفاوت از فرار کردن در خوابی هولناک بود اگر میدویدم شاید از آن منطقه خارج میشدم اما ندویدم چون تصمیم داشتم همه چیز را به سرنوشت واگذارم یک نفر از آدمهایی که جلوی من بودند فریاد زد چتر نجات چتر نجات و شروع به دویدن کرد اما خیلی زود خسته شد و باز آهسته به راهش ادامه داد بیشک چیزی که دیده میشد چتر نجات بود دست چپ مسیری که الان می رفتیم و بالای دور دست ترین کوه تکی ابر سفید بود و بالای این ابر در آسمان چتر نجاتی سفید رها بود. چتر بسیار بسیار نرم به سمت شمال در حرکت بود. آیا چتر نجات تهدیدی برای نیروهای ژاپنی نبود؟ نمی دانستم متعلق به نیروهای دشمن است یا ژاپن. اما وقتی توی این فکر راه می رفتم که آن چتر نجات مشکوک است. ناگهان صدای قررش بسیار مهیبی به گوش رسید. زمین قُررید و در جایی به فاصله 700-800 متری شمال غربی، ستونی از دود سیاه به هوا برخاست. آوارگان پیادهرو خطوط راه آهن همه همزمان شروع به دویدن کردند. اما خیلی زود انگار توان و روحیهشان ته بکشد، باز شروع کردن به عادی راه رفتن. بار دیگر صدای بمبی قرید و باز یکی دیگر همراه با صداهای بلندی که زمین را لرزاند ستون دود سیاه هم تا صد متر به هوا برخاست هر بار آوارگان شروع به دویدن می کردند. اما وقتی کسی فریاد می زد، انفجار مخزن مواد نفتی بود، مخزن مواد نفتی بود، همه دوباره راه می رفتند. مقابل این ماجرا کسی نبود که چیزی دیگر بگوید. وقتی خطوط راه آهن را تا پای پل فلزی یا دنبال کردم دیدم آنجا حدود دو هزار آواره روی علفهای کنار رودخانه نشستهند. کسانی که از پل میگذاشتند اغلب جوان بودند. ارتفاع پل حدود سی متر بود. وقتی به رودخانه نگاه میکردی، بدن از ترس سست می شد. اما راه دیگری برای رفتن به آن طرف رودخانه نبود. افراد نشسته اغلب زخمیهایی بودند، که توان گذشتن از پل را نداشتند و ناامید به نظر می رسیدند افرادی هم ساکت به یک گوشه از آسمان چشم دوخته بودند بیشتر افراد چشم از ابر عروس دریایی برداشته بودند زخمی های به پشت افتاده روی علف های کنار رودخانه هم کم نبودند فقط زنی دستهایش را به سمت ابر عروس دریایی دراز کرده بود و با تکرار ای کوموری ککوری بگذار زنده بمانیم ما غیر نظامی هستیم بگذار زنده بمانیم هر لحظه جیغش بلندتر میشد. با اینکه سالم به نظر میرسید عجیب بود از پل نگذشته. زن جوانی بود که شلوار کار پوشیده پارچه سرپوش ضد حملات هوایی به سر کرده به شاناش قمقما ویخته و برای کار و خدمت مجهز شده بود. از پل رد میشم تنبلی و ترس را کنار میگذارم و میگذرم. اینطور تصمیم گرفتم. و پشت سر جوانی حرکت کردم که از شانش خونجاری بود تا توانستم سعی کردم به آب رودخانه نگاه نکنم در جایی بعد از گذشتن از نوت درصد مسیر واگانی چپه شده و مسیر را مسدود کرده بود خم شدم و چهار دست و پا خوشبختانه توانستم بگذرم آوارگانی که از پل فلزی گذشتند از آبادی فوتابا تا ارتفاع کوه انگار به هم چسبیده بودند و چون صف مورچه ها بالا می رفتند در کمرکش کوه دو سجا پوشش گیاهی کو آتش گرفته بود. هوناکی آتیسوزی پوشش گیاهی کوه چیزی دیگر است و به نظر نمیرسید این افراد که کوه نشین نبودند از آن سر درآورند. نزدیکی آنها به آتشسوزی کوه مانند نزدیک شدن حشرات به شم در شب بود. من در کودکی آتشسوزی کوه را دیده بودم و وحشت آن را می شناختم به یاد میآورم که قربانیان زیادی داشت. خطا به چهار پنج آواره اطرافم گفتم آتش سوزی خطرناک است. آتشی که کوچک می آید به زودی به آتش بسیار وسیعی تبدیل خواهد شد. آتش پایین می آید. های گداخته و سخره هم ریزش می کنند. در حال حرکت این حرفها را زدم اما مخاطبانم بدون توجه از کوه بالا رفتند. سرانجام به گوشه شرقی پادگان رسیدم. پادگان بسیار وسیع از انبوه آوارگانی پر شده بود که نمیشد تهشان را دید فکر کردم افرادی که به اینجا پناهنده شده اند به دلیل شنیده‌هاشان از سونامی به گرداب جریان گرالود چون این 14 به سمت ارتفاعات میخزند. همانطور که از قبل در نظر داشتم برای رسیدن به ایستگاه هیروشیما همراه افرادی که به سمت کوه می‌رفتند در سربالائی کنار پادگان حرکت کردم مسلما هزاران و ده ها هزار نفری که حین گذشتن می دیدم، افرادی بودند که نمی و شکل و وضعیت آنها بسیار متفاوت بود هرچند وراجی ور است اما یک قسمت از آن را آنگونه که اکنون به خاطر می می نویسم. خونی که از سر و ازیها جاری می شد از صورت به شانه ها و پشت و از سینه به روی شکمشان می رسید. افرادی که به آنها های خونی سیاه رنگ چسبیده بود فراوان بودند، افرادی هم بودند که خون از آنها جاری بود اما حالا توان انجام کاری را نداشتند افرادی که دستهایشان را رها کرده بودند به وسیله موج جمعیت تلو تلو خوران رانده می شدند و پیش می رفتند. موج جمعیت به آنهایی که چشم خود را بسته بودند فشار وارد می آورد و شناورشان می کرد. زنی دست کودکی را گرفته بود اما ناگهان متوجه شد فرزند خودش نیست. جیغ زد وای، دست او را رها کرد و دوید. کودک با گفتن امه امه به دنبال او رفت. پسر بچه شش هفت ساله بود. والدینی که دست بچه های خود را گرفته بودند اما فشار جمعیت باعث شده بود، دست آنها را رها کنند در حالی که مدام نام فرزند خود را صدا می زدند، با فشار به سیل جمعیت آنها را از هم باز می کردند. در این هین دوست زربهی هم از کسانی می‌خوردند که به آنها فشار وارد می‌کردند. مردی میان سال پیرمردی را بردوش داشت. پدری هم دختر مریضش را بر کور گرفته بود. زوجی که بچه و اساس خود را بار کالسکه بچه کرده بودند ناگهان در محاصره موج جمعیت قرار گرفتند و بر اثر فشار آنچه روی کالسکه گذاشته بودند پخش و پلا شد. این کار باعث شد افرادی که پشت سرانها آنها مانند مهره بازی شگی بر زمین میفتند آه و ناله در آن لحظه بسیار زیاد بود مردی ساعت دیواری را مانند پرچم به دست گرفته بود و با صدای تیک تاک آن راه میرفت مردی سبد ماهیگیریش را با چوب آن به هم بسته بود و بر دوش حمل میکرد زنی پا بهرحنه گریان دو دستش را سایبان بان چشمهایش کرده بود مردی میان سال زیر بغل زنی را که چهره سینه و دستهایی آغشته به خون داشت گرفته بود و او را همراه خود می‌کشید. با هر قدم مرد سر زن به جلو عقب چپ و راست حرکت می کرد به نظر می رسید هر دوی آنها هم نمی تا کی خواهند توانست با این وز ادامه دهند این دو را هم موج جمعیت تحت فشار قرار داده بود زنی جوان و تقریبا لخت بچهای بهرحنه را با صورتی کاملا خونآلود با تناب به پشت بسته بود و حرکت میکرد مردی میخواست سریع برود اما موج جمعیت به او فشار میآورد پس به ناچار با گامهایی آهسته پیش میرمد